بگذار نفس ها را به درون کال بدت ببرند موسیقی موسیقی گاهی هنگامی که ذهنم بسیار فعال است برگرفتن توجه از زن و موطوف داشتن آن به کال بود خیش برایم بسیار دشوار می نماید. به ویژه وقتی که نگران یا مسترب هستم. آیا چاره ای برای خلاصی از این حالت وجود دارد؟ هنگامی که تماس با کالبد درونی برای دشوار می شود، راحت آن است که روی تنفس خود تمرکز کنی. تنفس هوشیارانه که در جای خود مراقبه نیرومند نیز هست، به تدریج بین تو و کالبد درونیت ارتباط برقرار میکند نفسهای خود را هنگامی که به ریهها میروند و بیرون میآیند با توجه خیش دنبال کن نفس بکش و توجه خود را به دمها و بازدمهایت معطوف کن چشمان خود را ببند و خود را قرقه در حالهای نورانی تجسم کن غرقه در هوای پراکسیژن آگاهی آنگاه این هوای پر اکسیژن آگاهی را به درون ریه بفرست. احساس کن که این هوای نورانی همه بدن تو را پر می کند و تو نورانی میشوی. سپس به تدریج توجه خود را به احساس خود معطوف کن. سعی نکن از این موضوع تصویری ذهنی بسازی. استفاده خلاق از ذهن اگر میخواهی برای هدفی خاص از ذهن خیش استفاده کنی، این کار را بکن اما در ارتباط با کالبد درونی خیش فقط وقتی که بتوانی بدون واسطه فکر آگاه باشی آنگاه میتوانی از ذهن خیش خلاقانه استفاده کنی. ساده ترین راه برای ورود به این حالت راه کالبد توست. هر زمان که به پاسخ راه حل یا ای خلاقانه نیاز داشتی کافی است که فکر را با متمرکز ساختن توجه خود روی میدان انرژی درونی برای لحظی متوقف کنی نسبت به سکوتی که همه وجود تو را فرا گرفته است هوشیار شو آنگاه وقتی فکر را از سر میگیری فکر تو تازه و خلاق خواهد بود در همه فعالیت های فکری مدام بین فکر و سکوت درون در رفت آمد باش به تعبیری فقط با سر خود فکر نکن با همه وجود خود فکر کن هنر گوش دادن وقتی به حرف های کسی گوش میدهی، فقط با ذهن خود به او گوش نده بلکه با همه وجود خود به او گوش بده هنگام گوش دادن به او میدان انرژی کالبد درونی خود را احساس کن این کار توجه تو را از فکر برمیگیرد و آرامش و سکوتی میافریند تا تو بتوانی حقیقتا و بدون مزاحمت ذهن گوش بدهی بدین سان تو به دیگری فضایی برای بودن میدهی این بهترین هدیهای است که تو میتوانی به کسی بدهی بسیاری از آدمها نمی‌دانند چگونه به های کسی گوش بدهند زیرا بخش عمده توجه این آدمها را فکر رو بوده است آنها بیشتر مشغول فکر خود هستند تا حرف‌های مخاطب خود و یا چیزی که در حرف‌های مخاطبشان نهفته است یعنی هستی بدیهی است که تو نمی‌توانی هستی دیگری را احساس کنی مگر از طریق احساس هستی خود این احساس سراغاز تجربه یگانگی با همه چیز و همه کس است سراغاز عشق در ترین سطح وجود تو با همه چیز و همه کس وحدت داری رابطه بسیاری از آدمها از سطح تعاملی ذهنی فراتر نمی رود. در این نوع رابطه ها این وجود آدم ها نیست که با وجود دیگری رابطه برقرار میکند هیچ رابطه‌ای نمیتواند در این حالت شکوفا شود به همین دلیل بسیاری از رابطه ها آلوده به بگو مگو و نزاع است وقتی زمام امور زندگی تو در دست ذهن است درگیری مشاجره و مسئله ها اجتناب ناپذیرند تماس با کالبد درونی فضای گشاده و پاک بی ذهنی را می آفریند. فضایی که در آن رابطه همچون گل نیلوفر می شکفند. درهایی گشوده به ذات غیر متجلی سفر به جرفای کار بدخیش من می توانم انرژی درون بدنم را احساس کنم، بی در بازوها و ساقهایم، اما گمان نمی کنم بتوانم به ژرفای کالبود خیش سفر کنم. ده تا پانزده دقیقه زمان ساعتی را به مراقبه اختصاص بده. همین کافی است. ابتدا مطمئن شو که تلفن زنگ نخواهد زد و کسی مزاحم مراقبه تو نخواهد شد. روی یک صندلی بنشین صاف صاف تکیه نده این وضعیت به تو کمک میکند تا هوشیاریت را حفظ کنی یا حالت نشسته ای را انتخاب کن که در آن حالت احساس راحتی کامل میکنی مطمئن شو که بدنت در آرامش کامل است چشمانت را ببند چند نفس عمیق بکش با شکم نفس بکش نه با سینه چنان نفس بکش که وقتی نوک انگشتان دو دست خود را روی شکمت به هم میچسبانی با دم و بازدم تو آنها از هم جدا شوند و دوباره به هم برسند. سپس نسبت به سراسر میدان انرژی کالبد درونی خیش هوشیار شو. درباره آن فکر نکن. آن را احساس کن. با این کار آگاهیت را از ذهن پس میگیری. اگر این مراقب موثر بود، آنگاه تجسم غرقه بودن در نور را که پیش از این توضیح دادم تمرین کن. وقتی توانستی کالبد درونی خیش را به عنوان میدان واحد انرژی احساس کنی، تصویرهای ذهنی خود را کنار بگذار و تماماً با احساس خود باش. اگر توانستی، تصویر ذهنی از بدن خود را نیز، کنار بگذار. آنگاه، آنچه باقی میماند، احساسی فراگیر از حضور یا هستی است، احساسی که هجاب چهره جان تو را که همانا قبار تصور ذهنی تو از بدن خیش است، کنار میزند. سپس، توجه خود را به جرفای این احساس ببر. با این احساس یکی شو، چنان در این میدان انرژی محف شو که دیگر دوگانگی ذهنی شاهد و مشهود، از میان برخیزد و چیزی از دوگانگی تو و بدن خیش بر جایی نماند. در این لحظه فاصله میان درون و بیرون نیز محو می شود. بنابراین از کالبد درونی نیز خبری نخواهد بود. با سفر به جرفای کالبد خیش کالبد خیش را استحاله می بخشی. تا جایی که احساس راحتی می کنی در این قلم روه هستی ناب بمان. آنگاه دوباره نسبت به کالبد فیزیکی خود تنفس خود و نیز حواس خود هوشیار شو و چشمان خود را باز کن با تعمل چند دقیقه به پیرامون خود نگاه کن هیچ برچسب ذهنی بر آنچه میبینی نچسبان و در همین حال احساس کالبد درونی خیش را حفظ کن دسترسی به ساحت بیشکلی آزادی حقیقی است. حضور در این ساحت است که تو را از اثارت صورتها و یکی انگاری خود با آنها می رهاند. مولانا در همین ساحت بیرنگی و بینشانی سروده است. آه چه بیرنگ و بینشان که منم. کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور. کو میان اندرین میان که منم. بهر من؟ غرق گشت هم در خیش بلعجب بحر بیکران که منم این ساحت ساحت وحدت است ساحت پیش از کسرتها ها می این ساحت را ساحت باطن هستی بنامیم منبع نادیدنی همه چیز و همه کس هستی همه هست ها این ساحت قلمرو سکوت و آرامش ژرف است قلم رو شور زندگی و شادمانی، هنگامی که حضور پیدا می کنی شفاف میشوی. چنانکه که نور میتواند از تو عبور کند. آنگاه آگاهی ناب کیهانی از تو میگذرد و پیرامون تو را روشن می کند. در این حالت در میابی که این نور از هستی تو جدا نیست و عین هستی توست. ظاهر هستی، جهان صورتها و جنبش هاست، باتن هستی بیشکل و بینشان و غرقه در آرامش و سکوت است. اما ظاهر و باطن هستی هر دو اشاره به یک حقیقت دارند. جهان هستی است که جلوه کرده است. باطن هستی باز هستی است در حالت عدم تجلی خود. همه صورتها از بی صادر می شوند. اگر به جرفای کالبد درونی خیش سفر کنی، به باطن هستی میرسی، به سرچشمه، به ذات غیر متجلی، ظاهر هستی جهان تولد و مرگ است، وقتی آگاهی تو معتوف به بیرون است، ذهن و جهان صورتها پدیدار میشوند، وقتی ازم تماشا میکنی و آگاهی تو متوجه درون میشود، آگاهی تو، اصل خود را پیدا می کند و به خانه باز می گردد. آگاهی تو همچون مرغابیان از دریا برخواست است. آگاهی تو در دریاست که احساس می کند در خانه خود است. زمانی که آگاهی تو به جهان صورتها باز می گردد تو دوباره هویت ظاهری خود را که آن را موقتا کنار گذاشته بودی پیدا می کنی. حالا دوباره اسمی داری، گذشته داری، وضعیت زندگی داری، آینده داری. اما اکنون با توجب تجربه ای که داشته ای دیگر آدم سابق نیستی. حالا تو حقیقتی را در خود تجربه کرده ای که از جنس جهان صورتها نیست. گرچه از این جهان جدا نیست کما اینکه تو نیز از این جهان جدا نیستی. حالا بگذار تمرین معنوی تو این باشد از حالا به بعد صد درصد توجه خود را به دنیای بیرونی و ذهن خود معطوف نکن بخشی از توجه خود را برای درون خیش نگهدار حتی هنگامی که به فعالیت‌های روزمره می‌پردازی باز ارتباط خود را با کالبد درونی خود حفظ کن سکونی را که در جرفای کالبد درونی است احساس کن دروازه دلت را همواره به روی باطن هستی گشوده نگهدار حفظ آگاهی نسبت به باطن هستی در همه ی وضعیت های زندگی ممکن است تو می در همه شرایط زندگی خود به این منبع آرامش و صفا دسترسی داشته باشی تو پلی هستی بین ظاهر یا ذات متجلی و باطن هستی یا ذات غیر متجلی بین جهان خدا معنای اتصال همین است اتصال با منبع روشن است. فکر نکن که ظاهر هستی از باطن آن جداست چگونه ممکن است ذات غیر متجلی ذات همه هست ها و مظاهر و پدیده هاست خدا همه چیز را از خود پر و سرشار کرده است بگذار برای توضیح بدم هر شب هنگام خواب بیرویا سفری داری به باطن هستی تو در خواب بیرویا همچون قطره ای در دریا محو می شوی زمانی که بیدار می شوی و به جهان صورتها و کسرتها ها پا میگذاری از خواب بیرویا خود به اندازی انرژی ذخیره کرده که برای حفظ تو تا مدتها ها کافی است تو به این انرژی بیش از قضا نیازمند هستی انسان فقط به قضا زنده نیست اما در خواب بیرویا آگاهانه به باطن هستی قدم نمیگذاری گرچه فعالیت های بدنی تو همچنان بر جایند اما در آن حالت تو دیگر نیستی آیا می توانی تصور کنی که هم در خواب بیرویا باشی و هم آگاهی خود را حفظ کرده باشی تصور چنین حالتی ممکن نیست زیرا این حالت خالی از مضمون است باطن هستی تا زمانی که آگاهانه وارد ساحت آن نشده باشی تو را نمیرهاند باید با قلبی سلیم دلی بیدار و حاضر به ساحت باطن هستی وارد شوی تا آزاد شوی به همین دلیل مسیح نمیگوید حقیقت تو را آزاد خواهد کرد بلکه میگوید تو حقیقت را خواهی شناخت و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد منظور او حقیقت ذهنی نیست منظور او حقیقتی است که ورای طور عقل و ورای جهان صورت ها و هاست حقیقتی که یا بلاواسطه شناخته می شود و یا اینکه هرگز شناخته نمی شود اما سعی نکن در خواب یا هوشیاری خود را حفظ کنی موفق نخواهی شد حد اکثر می توانید رؤیای خود کمی هوشیار باشی اما ورای این رؤیا هرگز چون این رؤیای ای شاید ای داشته باشد اما رهایی بخش نیست بنابراین از کالبد درونی خود به مسابه دری گشوده به باطن هستی استفاده کن بگذار در همیشه گشوده بماند تا هم به باطن هستی دسترسی داشته باشی تا جایی که به کالبد درونی تو مربوطه است پیری و جوانی فقر و قنا شهرت و گمنامی هیچ کدام اهمیتی ندارند زمان کالبد درونی زمانی است مکان کالبد درونی مکانی است اگر توان احساس کالبد درونی را نداری از معبرهای دیگر گذر کن معبرهایی که آدمی را به خدا میرسانند به عدد نفوس خلایق است در نهایت همه این معبرها یکی هستند. در باره بعضی از این درها و معبرها به اختصار سخن می گویم